و هفت. چون جوان گفت فاصله کشور من با کشور شما یک سال راه است و شما این فاصله را در زمانی پیموده اید که سرزمین من در تحت تاثیر جادو بوده و مسافت به نظرتان تان کوتاه جلوه کرده است سلطان گفت در این صورت شما باید به کشور من بیایید و چون من فرزندی ندارم شما را به فرزندی خود میپذیرم تا بعد از من جانشین من شوید وقتی هر دو پادشاه به پایتخت کشور شاه جوان رسیدند، جشن و چراغانی کردند و شاه جوان شخصی از خانواده خود را که از خیشان نزدیک و مورد اعتمادش بود به سلطنت برگزید و دستورات لازم را صادر کرد. درباریان و کلیه عمرا و را اصلای مملکت متاسف بودند که شاه چنین تصمیمی گرفته است. سه هفته طول کشید تا تدارک سفر آماده شد شود. شطور جواهرات قیمتی خزانه را هم می کردند و پنجاه سوار که جوانان ورزیده و آراسته به لباسهای زیبا بودند شاه جوان و سلطان را همراهی می کردند سلطان مدتی جلوتر پیک هایی به سوی امپراتوری خیش فرستاد، داد تا ورود او را به مملکت اعلام کنند و به مردم اطلاع دهند که امپراتور با شاه جوان که فرزند امپراتور است قریبا وارد خواهند شد و شهر را آیین بندند. و علت قیبت طولانی او را به آگاهی ملت برسانند هنگامی که سلطان و چاه جوان و همراهان به نزدیکی های پایی تخت سلطان رسیدند افتران و ممورانی را که سلطان در آن محل گمارده بود از آنها استقبار کردند و گزارش دادند که سراسر امپراتوری سلطان امن و امان است و قیبت طولانی امپراتور هیچ خونه تغییراتی در روند زندگی مردم و تشکیلات مملکتی پیش نیاورده است اهالی شهر گروه گروه برای استقبال امپراتور به بیرون شهر حرکت کرده بودند و چندین روز متوالی مردم به شادی و سرور پرداختند و از بازگشت امپراتور مهربان و عادل خیش اظهار مسرت و خرسندی کردند روز بعد امپراتور درباریان را به حضور پذیرفت و به همه آنها هدایای گرانبها و جواهرات قیمتی داد شاه جوان را که سلطان جزایر سیاه بود است معرفی کرد و او را فرزند خواندهی خود نامید امپراتور به پاس وفاداری بزرگان و درباریان در مدت غیبت خود به هر کدام پاداش ارزنده به فراخور حال هر یک تصمیم کرد آنگاه دنبال مرد ماهیگیر فرستاد او را به حضور آوردند امپراتور به خاطر آنکه ماهیگیر سبب شناسایی شاه جزای بود او را مورد محبت قرار داد و یکی از املاک آباد و زرخیز را به او بخشید و او هم با خانوادهی خود تا آخر عم به خوشی و آسودگی در آنجا زندگی کرد داستان مرد ماهیگیر در اینجا پایان گرفت و شهرزاد اجازه خواست تا داستان جالب دیگری را شهر دهد شهریار اجازه داد و شهرزاد چنین گفت داستان سه درویش و پسران شاه و پنج بانوی بقدادی در زمان خلافت هارون و رشید در شهر بقداد که دارای رونق و شهرت فراوان بود مرد زندگی میکرد که شغل او باربری بود با وجود شغل ناچیزش دارای هوش و استعداد و رفتاری پسندیده بود. این مرد هر روز به محلی میآمد که مشتریان پس از خرید بارهای خود را به او میدادند که به خانه حمل کنند. او سبد بزرگی داشت که آن را روی سر خود قرار میداد و بارها را در آن میگذاشت و حرکت میکرد. روزی باربر در محل همیشگی خود ایستاده و منتظر خدمت بود که خانمی زیبا و جوان که چادری از پارچه ساتن بدن او را پوشانده بود به او نزدیک شد و با صدای دلنشین و نافذ خود به او گفت: سبدت را بردار و دنبال من بیا." باربر که سیمای زیبای زن را دیده و كلام شیرین او را شنیده بود، اختیار از جای برخاست و با خوشحالی گفت: "امروز روز خوبی برای من است." و به دنبال خانم راه افتاد. زن جوان نزدیک خانه رسید که در بزرگی داشت. خانوم دقل باب کرد، در باز شد و مرد عیسوی با قیافه‌ای محترمانه و ریشی بلند و سفید رنگ در آستانه در ظاهر شد. زن جوان بدون که سخنی بگوید، پولی در دست او گذاشت. مرد عیسوی می‌دانست که آن خانوم از او چه می‌خواهد. به داخل خانه رفت و پس از لحظه‌ای چند مراجعه کرد. و شیشه بزرگ از شربت ناب به او داد و او هم به باربر داد و گفت در سبد بگذار و دنبال من بیا بانو یه جوان به راه افتاد و حمال هم, هم به دنبال او تا به دکان میوه و گل رسیدند و بانو میزه های بسیاری و چند دسته های خوشبو و رنگارنگ و, رنگ و چندین نوع های معطر خریداری و به دستور او باربر همه را در سبد گذاشت و از آنجا به دکان قصابی رفت و بیش از من از بهترین گوشت ها را خریده و باز در سبد جای داد. بانوی جوان از آنجا به سراغ مغازه دیگری رفت. در آنجا مقداری خیار و سایر سازیجات و گیاهان صحرایی که در سرکی می و به صورت ترشی در می آورند خرید. آنگاه به مغازه دیگری رفت و مقداری پسته و گردو و آجیرهای گوننگون و بادام و آناناس و انواع میوه خشک و مقادیر همشیرینی های متنوع. که باب هر سلیغ بود خریداری کرد و همه آنها را در سبد بار وزن این سبد به قرچی سنگین شد که هم به صدا درآمد و گفت اگر شما قصد خرید این همه جنس داشتید بهتر بود از اول به من می گفتید تا من چهار پایی کرایی کنم و این بار سنگین را رو روی آن هم کنم بانوی زیبا با لبخندی شیرین و چشمان افسونگر خود باربر بر را وادار به خاموشی کرد و او را او تا دنبال او برود. بعد از آن بانوی زیبا به مغازه داروهای گیاهی رفت و انواع عرقهای خوشبو و میخک و زنجبیل و مشک و بیدمشک و فلفل و مقدار کافی انبر و عدویه های هندی خریداری کرد و سبد باربر را کاملا به آنها انباشت. سپس به او اشاره کرد تا دنبال او به سوی خانه رمان گردد. پس از مدتی راه رفتن و عبور از خیابان مقابل خانه پرشکوه و بزرگی رسیدند که در ورودی آن از آج فیل بود و جلوی خانه چندین ستون بلند زیبا و گچ شده تا زیر سقف بیرونی ساختمان با جلوه بسیار قد برافروشته بودند بانوی زیبا به آرامی و نرمی چک و در کفت در طول چند لحظهی که آنها در انتظار باز شدن در بودند هزاران اندیشه گوناگون در مغز بار برگذشت قد از هر چیز زده بود که چرا چنین بانویی شخصا برای خرید نیازهای روزانه به بازار آمده. بعد به این نتیجه رسید که سر و وضع و پوشاک بانو نشان میدهد او نمی‌تواند کنیز خانواده باشد، زیرا آثار بزرگزادگی از سیمایش نمایان بود. به این نتیجه رسید که باید خانم کدبانویی باشد. در همین افکار بود و میخواست که در این باره از او پرسشی کند که ناگهان در بزرگ ورودی گشوده شد و بانوی زیبایی چون قمرس ماه در آستانه در پدیدار شد. این بانو به قدری زیبا بود که باربر بی اختیار بر خود لرزید و نزدیک بود تعادل سبد روی سرش را از دست بدهد و سبد از روی سر او به زمین بیفتد. باربر سخت مفتون صورت زیبا و چشمان فریبای او گردید. بانوی زیبای اولی که متوجه وضع حال باربر شده بود، خود را بی خبر از آن نشان داد، ولی از نگاه کردن به حالت چشمان باربر لذت می‌برد و آنچنان حواسش روی باربر متمرکز بود که باز بودن در را توجه نکرد بانو دیگر که در را گشوده نگه داشته بود، به سخن در درآمد و گفت: خواهر، معطل چه هستی؟ در باز است و این بار بر زیر فشار این همه سنگینی طاقت خود را از دست میدهد داخل شو. هنگامی که زن زیبایی جوان وارد خانه شد، بانوی جوانی که در را گشوده بود، آن را بست و هر نفر بعد از عبور از حال بسیار زیبایی، وارد محوطه‌ای وسیع شدند. دور آن با تالارهای بزرگی احاطه شده بود در انتهای این فضای وسیع تختی از کهربای زرد در وسط قسمتی از این محوطه که سقف آن اندکی پایین‌تر از سایر قسمت‌ها بود دیده می‌شد که چهار ای از چوب ابنوس داشت و با دانه های بسیار درشت الماس و آراسته گردیده و روی آن اساطن قرمز که با کار استادان فن هندی گلدوزی و زری‌بافی شده بود، پوشیده شده بود. در وسط محوطه‌ی وسیع، کوزه بزرگی بود که کف آن با سنگ مرمر سفید فرش شده و لویز از آب زلال تمیزی بود که از دهان مجسمه برنزی که به شکل شیری بود، در آن فرو میریخت. باربر با وجودی که بار سنگینی بر روی سر تحمل می‌کرد، همین که درون این خانه ی زیبا و پرشکوه را مشاهده کرد، و متوجه شد که تمام اساسی آن با نظم خاصی در جای خود قرار گرفته نتوانست از تحسین خودداری داری کند ولی بیش از هر چیز زیبایی خیره کننده سومین بانوی جوان که زیبایی او از دو بانوی قبلی بیشتر و چشکین بود توجه به تحسین او را برانگیخت. این بانوی بسیار زیبا و آراسته بر روی همان تخت کهربا نشسته بود وقتی که دید دو بانوی جوان وارد آنجا شدند، از تخت به زیر آمد و به سوی آنها رفت باربر وقتی دید که دو بانوی جوان احترام خاصی به این بانو نشان می دهند پیش خود حد زد که بانوی خانه باید همین خانم پری پیکر باشد نام این بانو زبیده و آن که در را گشوده بود سوفیه و آن که برای خرید به بازار رفته بود امینه بود زبیده همین که نزدیک دو بانو رسید با صدای گیرایی گفت خواهران. فکر نمی این مرد در زیر فشار این همه بار بیتاقت شده است چرا او را از این رنج رهانه می آنگاه خود جلو و به اتفاق خواهران خود سه نفری سبد را از روی سر باربر برداشتند و بر روی زمین گذاشتند و آن را خالی کردند امینه هم اجت باربر را به او پرداخت بازن که از دریافت آن همه پول برای حق و زحمی خود بسیار خوشنود شده بود دلش میخواست که این فرشتگان زمینی را ترک نکند و هممش در پیه تدبیری بود که چگونه و از چرا با آنها وارد صحبت شود. وقتی چادر امینه به کناری رفت و صورت زیبا و چشم عبرو و ابرو و لب‌های برجسته او را دید، فهمید که امینه هم به زیبایی زبیده است و صفی هم مانند دو خواهر خود می‌باشد و خلاصه فرشته‌ای هستند که از آسمان به زمین آمدهاند. زبیده هم که تا این لحظه هرگز مردی را در این خانه ندیده بود، خودشش متوجه باربر گردید حالا این همه میوه آن بطری بزرگ شربت و آن مقدار شیرینی و نقل و خوردنی‌های دیگر برای این تعداد افراد کاملا کافی بود خصوصا برای کسانی که از خوردن و نوشیدن لذت فراوانی می‌بردند زبیده اضافه کرد علت اینکه باربر در آنجا پا به پا می‌کند آن است که می‌خواهد نفسی تازه کند و بعد راه بیفتد بعد که دید همچنان در آنجا ایستاده او پرسید چرا معطلی و دنبال کار خود نمیروی آیا پول کافی به تو ندادند بعد رو به امینه کرده و گفت خواهر، مقدار دیگری پول به این آقا بدهی ای که با رضایت خوشحالی از اینجا برود بعد پاسخ داد موضوع پول نیست شما بیش از حق من به من دادید من میدانم که نباید بیش از این اندازه در اینجا بمانم ولی من مردی هستم که خود را در مقابل سه زن زیبا میبینم و شما میدانید که همزیستی چند بانوی زیبا بدون که مردی در کنار آنها باشد همان اندازه نامکتوب است که تعدادی از مردان بدون وجود زنی در کنار یکدیگر دیگر زندگی کنند و برای اثبات درستی نظریه خود مطالب بامزه و جالب دیگری هم به آن احسود و حتی زبول المثل عربی را هم که در بغداد رایج بود به کار برد زبول المثل میگوید به آدم تنها سر میز خوش نمیگذرد مگر که دور میز چهار نفر باشند اینک شما خانمها سه نفر هستید و اگر من هم به جمع شما بپیوندم چهار نفر میشویم که میتوانیم از نشستن دور سفره و همنشینی با یکدیگر لذت ببریم بنابراین شما به یک نفر دیگر احتیاج دارید بانوان جوان با شنیدن سخنان باربر به خنده افتادند ولی زبیده با لحظه جدی و قاطع گفت دوست من شما قدر پایتان را از گیریم خود درازتر سر کرده اید و در, و در رفتارتان جسارت ورزیدید گرچه شما در سطح نیستی تا ما با شما رابطه خیلی نزدیکی داشته باشیم ولی باید به شما بگویم که ما سه که با هم زندگی می کنیم و کارهایمان را محرمانه انجام می دهیم به طوری که کسی آگاهی بر آن ندارد بدیهی است که ما باید از اشخاص بی‌احتیاط برحذر باشیم در ایکی از کتاب ها هم راز خود را در صندوقتوی دل خود پنهان کنید و هرگز آن را برای کسی فاش نسازید. آن که راز خود از پرده بیرون نهد دیگر نمی تواند بر بران گذارد. زیرا اگر سینه شما نتواند راز شما را در خود پنهان نگه دارد، چگونه انتظار دارید سینه نامحرم بتواند آن را محفوظ نگه دارد؟ بار بعد در پاسخ زبیده گفت، بانوی من، من از بار که شماها را دیدم، آثار بزرگ زادگی و هوش و کفایت را در چهره شما خواندم و فهمیدم که دارای صفات بسیار ای هستید که در همه کس آن را نمیتوان یافت و اطمینان دارم که در تشخیص خود اشتباه نکردم. اگر روزگار با من ناسازگار بوده و از توحید هستی ناچاران باربری را برگزیده ام که لقمه نانی به دست آورم ولی در عوض اهل کتاب خواندم بوده و کتب تاریخی و علمی فراوان خواندم. و فکر خود را پرورش داده و کوته ندارم و در این کتاب هایی که میخوااندم به این نکته برخوردم و آن را همواره سرمشق خود در زندگیم قرار دادم. ما اسرار خود را فقط باید از افرادی پنهان کنیم که خویشتندار و سرنگهدار نیستند و از اعتمادی که با آنها میکنیم سوءاستفاده می‌کنند و به اعتمادی آنان زبان زد همگان باشد. کسانی که اعتماد ما را جو کرده باشند میتند محرم اسرارمان باشند. زیرا انسان قدرت تحمل راز خود را برای همیشه نخواهد داشت و همین دارد کسی را با خود شریک کند. رازی که به من گفته شود مانند آن است که آن را در صندوقچهی گذاشته اید و در آن را قفل کرده اید و کلیدش را هم گم کرده باشید. وقتی زبیده سخنان هوشمندانهی بابر را شنید فهمید که او انسان آگاه و مطلعی است و شایستگی مشارکت در آنان را دارد و در حالی که لبخندی زجر به بابر گفت تو که زحمت حمل این سبد سنگین رو کشیده ای حق داری که در بزن ما با ما همراهی کنی. صوفیه هم سخنان خواهر را تایید کرد و خطاب به باربر گفت: ای که گفتند اگر کسی چیزی برایتان بیاورد، باید مقدمش را گرامی داشت و اگر دست خالی بیاید، مقدمش گرامی نخواهد بود. در اینجا امینه بیاری باربر که در برابر سخنان دو خواهر دچار گیجی شده بود برخاست و گفت: خواهران عزیزم من هم با شما موافقم که این آقا در بزن ما شرکت جوید. خودتان میبینید که او میتواند با بیانات و سخنانش ما را کاملا سرگرم و مشغول کند. نیازی به گفتن ندارد. اگر این شخص توانایی و زیرکی کافی نمیداشت، هرگز من نمیتوانستم این همه خرید را در این مدت کوتاه انجام دهم. علاوه بر آن در طول راه که می‌آمدیم، مطالب آموزنده و سودمندی هم برایم شهر داد. به این جهت من هم او را تایید باور که دید این همه از او تعریف و تنجید می شود از فرد خوشحالی در پوست خود نمی گنجید و برای اظهار تشکر خود را در جلوی پاهای امینه به زمین انداخت و پس از بوسیدن زمین در حالی که از زمین برمیخواست گفت ای زیباترین بانوان خوشبختی من امروز با دیدار شما آغاز شد و اینک با رفتار و گفتار قشنگ خود آن را به حد کمال رساندید من که زبانم قادر به سپاسگزاری از شما نیست شما سخاوتمندانه درباره‌ی لطف فرمودید. باربر در حالی که هر خواهر را مورد خطاب قرار داده بود، گفت: شما خانم‌های محترمه، امروز مرا به افتخار بزرگی نائل کردید و و تصور فرمایید که من از آن سو استفاده خواهم کرد یا خود را شایسته‌ی چنان افتخاری می‌دانم؟ نه، چنین چیزی نیست. من خود را بنده یک کمترین شما، بزرگوارا می‌دانم و در حالی که این سخنان را می‌گفت پولی را که برای اجرت باربری به او پرداخته بودند، از است در می‌آورد که پس بدهد. ولی زبیده آمرانه به او گفت این پول حق تو است و وقتی ما اجرت کسی را که خدمتی به ما کرده می‌پردازیم، دیگر هرگز آن را پس نمی‌گیریم. زبیده پول را از باربر پس نگرفت، ولی به او گفت رفیق، حالا که ما رضایت ماندن تو می‌دهیم، باید از حالا به شما توجه دهیم که علاوه بر آنچه که قرار است، محرمانه و پنهان از دیگران نگهدارید، باید روش و شیوه ما را در مورد همه چیز به طور کامل و صد درصد پیروی و اجرا کنید رفتار پسندیده و معدبانه همراه و مهربانی در معاشرت و همصحبتی خود از خود نشان در این هنگام بود که امینه لباس بیرون خود را تغییر داد و رخت راحت خود را دربر کرد زیرا در لباس منزل راحت تر بود آنگاه صفحه غذا را آماده کرد و انواع خوردنی های نیکو از جمله چند رقم گوشت پرندگان و چهار چهارپایان را روی میز آرایش داد و باسیهای شربت را هم با چند جام زرین در گوشه‌ای از میز کناری جای داد. در فاصله خانم‌های زیبا پشت میز غذاخوری در های خود لمیدند و باربر را هم دعوت بنشستند و غذا خوردن کردند. باربر از اینکه خود را در میان سه بانوی جوان بسیار زیبا می‌دید، بسیار شاد بود و خود را در آسمان ها حس میکرد. همین که اندکی غذا خوردند، امینه یکی از بطری های شربت را از میز کناری بلند کرد و جامی را هم در دست گرفت و در آن ریخت و آن را نوشید. بعد به ترتیب جامی هم به هریک از خواهران خود داد و چهارمین جام را به باربر تعارف کرد. باربر که دست او را می بوسید، را به دین مزمون با صدای گرم و گیرایی زنده می کرد. هنگامی که نسیم از روی گلهای خوشبو می گذرد آتشماسکننده آنها را به همراه خود به مشامجا میرساند. اینک من هم عطر این شربت را چندین بار خوشبوتر از بوی طبیعی آن حس میکنم، زیرا اینجا شربت با آن دستهای زیبا و معطر تماس داشتند این سخنان شاعرانه همگی خانم ها را خوشحال کرد و آنها هم به نوبت خود هر کدام اشعاری زیبا و عاشقانه بر زبان راندند و همه آنها از این بزم صمیمانه لذت میبردند. و این حالت خوش همه را خوشنود کرده بود و هیچ کم بودی احساس نمیکردند. این بعد تا پاسی از شب ادامه داشت. در این لحظه امینه از طرف خود و خواهرانش به باربر هشدار داد که در این هنگام تو باید اینجا را ترک کنی و ما را به حال خود گذاری باربر که در اوج شادی و لذت بود پاسخ داد: من در حال خوشی هستم و حیف است که در این حال مرا محروم از همنشینی خود سازید از این گذشته مقدار شربتی که نوشیده ام مرا در کیفیتی قرار داده که سر از پا نمی شناسم و در این حال راه خود را نمیدانم. شما اجازه بدهید من مدتی در اینجا بمانم تا حالت عادی خود را باز یابم. آن وقت به خانه خود خواهم رفت. امینه برای بار دوم طرفداری خود را از باربر تکرار کرد و گفت: حق با اوست. است بگذاریم تا صبح نزد ما بماند و بعد که به حال عادی برگشت به خانهاش برود. هم به سخن و گفت ما حرفی نداریم بعد رویش را به سوی کرد و گفت به شرط آنکه آن چرا که ما در حضور تو انجام می دهیم و مربوط به خود ما و یا دیگران باشد هیچ نباید دلیل آن را بپرسی زیرا پرسش تو درباره اموری که مربوط به تو نیست نتیجه خوبی برای تو نخواهد داشت. بنابراین خوب گش را باز کن و از ما نپرس که انگیزه ما برای کارهایی که خواهیم کرد چیست؟ باربر پاسخ داد بانوی بانوان از سوی من هیچ نگران نباشید من فقط میبینم ولی نمیپرسم من کانی نخواهم کرد که, که مورد سرزنش شما و یا مجازات قرار گیرم من چون آینه هستم که میبینم ولی چیزی را در خود نگه نمیدارم ببین رو به باربر و گفت برای آنکه موضوع را جدیتر بگیری برخیز و آنچه را که پشت در خانه در داخل خانه نوشته شده است بخوان و هرچه در آنجا نوشته شده است باید کاملا رعایت کنید باربر از جای خود بلند شد و آنجا رفت رفتو که در پشت در ورودی چنین نوشته است هرکس درباره موضوعی که به او ارتباطی ندارد پرسشی کند پاسخ دلخواهی نخواهد شنید و سرانجام به سود او تمام نخواهد شد بهتر است از اینگونه ها خودداری کنید پس از آنکه باربر آنچه را که بر پشت در نوشته شده بود خواند رو به خواهر نمود و گفت من سوگند یاد میکنم که هرگز در اموری که مربوط به من نمی شود یا آنکه مربوط به خود شما از هیچ گونه پرسشی نکنم. بعد از توافقی که بین باربر و سخاخر در مورد رازداری صورت گرفت، امینه وسایل شام را رو روی میز قضاخوری مرتب کرد و شمهای خوشبو و چوب عود روشن کرد و عطر خوشبویی در فضای تالار منتشر شد. صرف شام در پس ملایم شعله های شمها همراه با بوی مسح کننده عود و انبر حالت خوش و ایرانی پدید آورده بود. جامهای شربت یکی پس از دیگری نوشیده میشد و خواهرها که میخواستن باربر را از حال طبیعی خارج کنند، پیاپی به سلامتی او می و او هم متقابلا خود را ناگزیر به نوشیدن می‌دانست. همه شاد و خوشحال و از باده ناب سرمست و سرخوش بودند و با کلمات سخنان زیبا و نقطه های دلپسند و سنجیده و ظریف، بر زیبایی بزم شبانه می احسودند. در چنین حالتی ناگهان و برخلاف انتظار صدای چکوش در به گوش رسید صفی که گشودن در خانه و پاسخ‌خویی به چکوش در جز وظایف اوست از جای خود برخاست و به طرف در رفت پس از گفتگویی برگشت و گفت سه درویش جوان هستند که تازه وارد شهر بغداد شدهاند و غریب هستند جایی را نمی شناسند و میخواهند امشب را تا صبح در اینجا بگذرانند ولی اینها هر سه موی سر و ابرو و هایشان را تراشیده و عجیب تر از همه آنکه هر سه آنها چشم راست خود را از دست دادند بعد از شهر ظاهر آنها به خنده افتاد و همه خواهرها و باور هم به خنده افتادند امینه سخن خود را ادامه داد و گفت اینها درخواست دارند که ما رضای خدا به آنها رحم کنیم و امشب را به آنها پناه دهیم آنها اتفاقی به این خانه مراجعه کردند و علاوه بر آن جوانان خوشقیافهی هم هستند صفیه در پایان سخنانش گفت من به سهم خودم با جادادن به این درویش هم موافقم زیرا حضور آنها در اینجا شادی ما را بیشتر می کند و پایان بهتری را نوید می دهد آنها زحمتی برای ما نخواهند داشت و فردا هم از اینجا خواهند رفت زویده و امینه در اتدا موافق نبودند زیرا برای مخالفت خود دلایلی داشتند اما در برابر اصرار خواهر خود تسلیم شدند و گفتند آنها را به داخل خانه راهنمایی کن اما قبلا توجه بدهد که در اموری که مربوط به آنها نیست مداخله نکنند و اندرزی هم که پشت در نوشته شده است را بخوانند سفی گفت بسیار خوب و به سوی در رفت و پس از چند لحظه به اتفاق سه در فیش وارد شد بانوان جوان با ورود آنها از جای برخاستند و خوشامد گفتند و دردیش ها هم به نشانه احترام سر فرود آوردند و ترزیمی کردند و از اینکه که با آنها پناه داده شده تا شب را به سپاسگزاری سپاس گذاری کردند و گفتند ما خوشحالیم که در حضور شما پذیرفته شده ایم و می‌توانیم خستگی برنج راه را از خود دور سازیم. شکوخ و جلال خانه و سخنان مهبانانه بانوان جوان دردیش را سخت تحت تاثیر قرار داد ولی قبل از آن که به دور نیز بنشینند، چشمشان به باربر افتاد که لباسش تقریبا مشابه لباس یکی از آنها بود. آنها تصور کردند که او هم درویشی است که ظواهر درویشی را رعایت نکنده و موی ابرو و سر خود را نتراشیده. آنگاه یکی از درویش ها به باربر گفت: به نظر میرسد تو از آن درویش هایی هستی که با ما تفاوت داری. باربر که نیمه خواب‌آلود و در عین حال سرش از بادی ناب کاملا گرم شده بود، نگاهی قه زبالودی به آن درویش انداخت و با پرخاش و حالت ستیزه جوریانه گفت: بنشین و در اموری که مربوط به تو نیست مداخله نکن. مگر نخواهی روی در ورودی چه نوشته است؟ تو حق نداری که دیگران را وادار کنی مثل شماها لباس بپوشند. هر در کارهای شخصی خود صاحب اختیار است. درویش پاسخ داد: برادر حق با شماست. من قصد بدی نداشتم، شما خود را ناراحت نکنید. معذرت میخواهم که چنین سخنی گفتم. حاضرم هرچه شما دستور دهید اطاعت کنم در این موقع خانمها هم وساطت کردند و بحث را خاتمه دادند صفیه هم غذا برای درویشها آورد و شدت به آنها تعارف کرد بعد از آنكه درویشها تا آنجا که دلشان میخواست خوردند و نوشیدند با نرمزبانی و مهربانی به بانوان گفتند ما حاضریم که بعض پدید آوریم و اگر ابزار موسیقی داشته باشید بنوازیم و ترانههایی بخوانیم و شما را شاد و خشنود سازیم صفیه گفت صبر کنید تا برایتان ابزار موسیقی حاضر کنم این به گفت و به تالار دیگر رفت و بعد از چند لحظه نیلبک و تنبوری به همراه آورد و به درویش ها داد یکی از آنها نیلبک را گرفت و دیگری تنبور را و شروع به نواختن کردند و سومی هم ترانی زیبایی را زمزمه کرد ترانه و نی و هماهنگی تنبور و ضربه های شادی آفرین آن به قطلی هنرمندانه و دلنشین بود که خانومها هم هماهنگی خود را در خواندن آواز آغاز کردند. خانومها که مفهوم و معنای متن این ترانی شاد را می‌فهمیدند، گاه گاهی در ضمن خواندن لحظاتی ساکت می‌شدند و زنده نگاه کردن به یکدیگر هایی هم می‌کردند که بسیار پرمعنی بود. این غزل فرهنگیز و مصدی بخش به اوج خود رسیده بود و سرها گرد و دلها شاد و همگی از غم خوفارق بودند که ناگهان در دل شب ضربه‌ای بر کوبیده شد. صفیه دست از ترامه خانی کشید و با شتار زدگی به سوی در رفت. در اینجا شهرساد به شهری یا گفت ای پادشاه والامقام شما باید بدانید که چرا در آن هنگام شب در خانه آنبانوان را زدند و دلیل آن چه بوده است؟ خلیفه هارون و رشید عادت داشت که همراه با وزیر جعفر جفر برمکی اقرب شبها برای که بداند مردم چگونه زندگی می کنند بنسبت به خلافت و دستگاه حکومت چگونه میاندیشند، لباس مبدل از قصر خود بیرون میآمد و در و در کوچه و بازار میگشت و در خانه ها رو میکوفت و به عنوان مسافر قریب و بی جا و مکان وارد خانه‌ها میشد تا از درد دل آنها آگاه شود. این کار را شخصا انجام میداد، زیرا معتقد بود شاید در گزارش مأمورین حقیقت به او گفته نشود. در این شب خلیفه، به اتفاق جعفر برمکی وزیر اعظم و مسرور رئیس خواجه‌های های قصد با لباس های مبدل اوایل شب شبگردی را آغاز کرده بودند و پس از آن که به چند خانه سرزده بودند وارد خیابانی شدند که خانه این بانوان در آن واقع بود وقتی صدای ساز و آواز و خنده و شادی از آن خانه به گوش خلیفه و همراهان میرسد کنجگاب میشوند که این خانه متعلق به کیست و در آنجا چه میگذرد. به همین دلیل خلیفه به وزیر اعظم دستور می‌دهد که بر در بکوبد جعفر می‌گوید به نظر من درست نیست که در این هنگام مزاحم آنها شویم زیرا کار خلافی نکردند و مشغول تفریح در داخل خانه خود هستند به علاوه این خنده های بلند و شادی نشانه مستی آنهاست که از بادی ناب سرهایشان